فصل على محمد وله رفتهلي يا رب باب الفرج بطولك واكسر عني سلطان الحم بحولك وعنلني خسن النذر فيما شكوته وعذقني خلاوة السنع فيما سألته وهبلي من لدنك رحمة وفرجا حنيا وأجعل لي من عندك مخرجا وهيا می که پس بر محمد و خاندانش دون فرست و ای پر بردگار من به فضل خود در آسایش را به رویم بگوشم و به تواناییت سلطه غم و اندوه را بر من بشکم و در آنچه شکبه دارم به من احسان داشته باش. به شیدینی احسانت را آنچه درخواست نبودم به من بچشان و از جانب خیش رحمت و گشایش گوارا به من ببخش و نزد خود زود شدن را برای من مقرر کن بعدیش هم بخون عن تعاهد بل فروزک و استعمال سنتک و مرا به سبب غم و اندوه از رعایت واجبات رنجام سنت خود باز مدارم اینجا کنم دارو کن. فقط زقتو لما نزل بی یا رب درعا و امتلعتو به هم لما حدث علی حما و اندل رو علا چشم ما تو به و دفع ما وقعتو فی ففعل بی ظالک وانلم استوجقه منک یا ز العرش العظیم ای پروردگار من طاقت آنچه بر من رسیده را ندارم و از آنچه رخ داده از غم و اندوه پر گشتم و تو بر دفع آنچه به آن گرفتار شدهام و برطرف کردن آنچه در آن افتادهام توانایی پس آن را برای من انجام ده اگر چه از جانب تو شای سیاهان نیستم ای صاحب عرش و تخت بزرگ بسم الله الرحمن الرحیم و بهین نسته و هو خیر مغفد و معین سلام السلام و السلام حلا اشرف خلقه و مبلد رسالاته حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و بلقاسم محمد سلام آمد سلام آمد سلام آمد و الى الله على العلماء العاملین لاسی ما امامنا و قائدنا دعای هفتهام برای کسانی امام سجاد ش کرده که در مشکل خودشون درمونده هستند. همه راهها را پیمایش کردن راه مأمول معمول رو به نتیجه نرسیدن. به بیان خود حضرت کمرشون زیر دشواری و سختی خم شده. آورشون در خطره. عزیزشون در خطر مال و جانش به خطر افتاده و راه خود چارهای به ظاهر نداره حضرت فرمایش کردن در بندهایی از این دعا که شبهای قبل قرارت شد و بیان شد اگرچه هر مسببی، هر معلولی، هر چیزی دلیلی داره و سببی داره و علتی داره اما از اونجایی که خدای متعال مسبب الاسباب هست میتونه سببهای جدیدی رو خودش خلق کنه چون سببهایی که معمول هست و موجودات به باسطه اون علت به وجود میان یا به علتی رفت میشن اون الهت ها برای خدا محدود نیست مثلا آبی که سبب میشه برای رفع تشنگی میتونه همون آب سبب بشه برای قتل کسی فوت کسی مثلا یکی آب رو استفاده میکنه سیراب میشه یکی آب رو توجه نداره درش غرق میشه مثلا از بین میره دولب خلاصه علت و اسباب ها. غیر از این چون خدا خالق همه موجودات هست و خالق همه سبب ها و علت ها هست به ما حضرت نه توصیه میکنه تاکید میکنه که در موقعی که دنبمده میشی نمیتونید خلاصی پیدا کنید ظاهرا حاجت مسدود شده و، به اجابت نمیرسه، معیوس نشید. یأس yes, گناه کبیره است. یأس از خدا از گناهان بزرگی است. و یأس yes, همه فوقه همه عازم از برداشت روایات اون رو به عنوان گناه کبیره میدونند. مثل دیگر گناهان کبیره که شدید ترین گناهانه یا یعنی اصلا یکی از اونا در این حال که به ظاهر راه ها بسته است ولی باید امید داشته مؤمن اینجوریه مؤمن هیچ موقع یعظ پیدا نمیکنه یکی از راه هایی که برای برون رفت از مشکلات امام علیه سلامت رحم می کنه درخواسته دعا کردن. انسان وقتی بابر داره خدا رو اعتقاد داره به توانندی خدا. اعتقاد داره که وابستگانی داره این عالم وابستگانی به خدای متعال اونها ها معصومین هستن. اینا واسطه دستگیری هستند. قرآن واسطی دستگیریه تو دو تا چیز رو خدا ور ما در میانمون به امانت کداشتی تو خوب استفاده کنیم. یکی حضرات عیمال مسلم هم. که هم قرآن این دوتا رو به عنوان مستمسک ما عنوان وسیله دست ما برای رسیدن به حاجاتمون گذاشته وقتی این دو به ظاهر متقبی رو برای رفع مشکل ما ندارن میگه به خودم مراجعه کنیم ولی همه این باور رو ندارن فکر میکنن که دیگه کار از کار گذاشته در این دو حضرت تأکید میکنه اصرار میکنه که یا از برای مومن نه تنها خوب نیست بلکه گناه کبیره هست و انسان مومن هیچ موقع مایوس نمیشه. اون تا دعا کردن یه بخی از سر سیری هست یه از باب استرار وقتی آدم مستر میشه خود به خود از سمیم دل درخواست میکنه. اون دعا هست. انسان مستر دعاش مستجابه. مگر این که دیگه دیگی صلاح نباشه ماها اطلاع نداریم که صلاحمون به اجابت رسیدن هست یا نه ولی مأموریم نسبت به نیازهامون نسبت به حاجاتمون از خدا طلب کنیم هر چند در آیات، روایات، رای حلی برای حل مسئلهمون وجود نداره اگر داشت که مأمور به همون بودیم وقتی راه گذاشته شده دعا مستجاب نیست باید اون راه رو تهی کرد مسیر رو تهی کرد اما وقتی راه بسته از انسان چارش به ناچاری میرسه خدا امتحال میفرمد که بیان پیش خودم بیان از خودم درخواست کنیم میگیم مگه قبل سببها درست خودت نبود میگه چرا بعضی کارا رو و بعضی مشکلات رو حالا یا خودتون پیش آوردین یا پیش آمد کرده هیچ راهی نیست مگر از طریق خودم حتی توسول به قرآن که بسیار توسعه شده به ما معمولا قافلی قرآن سقل اکبر هست ولی ما توسولاتم معمولا به حضرت ائمه علیه که بایدم باشه اما قرآن خیلی نیرومنده خیلی تبانمنده این ماه ماه بر قرآن هست اگر بتونیم با قرآن اونس بگیریم قرائت کنیم در روزهای ماه مبارک و روزهای باقی مونده از این ما تلاوت کنیم قرائت کنیم بعد از قرائتمون صورت رو مز کنیم به صفحاتش ببوسیم قرآن رو به صورت مز کنیم به سینه بگیریم و بایش صحبت کنیم نیازهامون رو بگیم. مسائلات کنیم ازش. به شه اون و رحمتون. میگه من شه پا درس خواستم. مهربان ترین مهربانان هستم. در این حال که برقای بیشتر نیست به ظاهر بین دو جلد وبش میگیم کتاب مقدسه باید بدون تاهرت بیشتر از نذارید. ولی باطنش خیلی تماممند و قویه. با این حال اگر قرآن هم جواب نده معصومین هم حاجت بخویم و حاجتندی رو برامون نداشته باشن میگه بیاین در خونه خودم به خدا از خودم میخاید معیوس نشید ای ز مؤمن وقتی مشکل لاین حلبی بی برش پیش میاد به جهت امیدی که به خدا باید داشته باشه قل سوغم ازیتش نمیکنه اگر چه سختی اون مشكله آزار دهنده است ولی مؤمن وقتی معیوس نمیشه و به خدا تول میکنه. غمش کم میشه، غیش از دوش بیرون میره. یکی از حسص ناشه. و چون امید داره حاجتش میشه. تاکید داره که این حاجت من رو روا کن روا میشه مگر اینکه به منصوراعتش نباشه. اون دیگه چون ما اعلم نداریم. امیدمون رو هم کم نمی خوب خب نحوه تمثل به خدا چگونه هست هزارت میفرماید که شما از هر کس که چیزی رو بخواید درخواست کنید دو حالت داره یا قبل از درخواستتون ناراحتش کردین یا آزار یه عذیتی یه ناملایمی براش پیشو بردین. خب معمولا یه همچی کسی خیلی تحویل نمید آدم تو قبلا آزورد خاطرش کردی یا مثلا صدمی به دادی حالا کارت گیر کرده رفتی مثلا ازش درخواست درخواست گاهی هم نه هواشو داشتی احترامشو داشتی اون زودتر جواب میده اما اگه اون شخص آزوردی از دست من کریم باشه باید پوزش درست میشه باید طلاب بخشش درست میشه با باید احسانی با باید کار نیکی برای او وقتی انجام میدیم حالش جا میاد و درخواستان رو جواب میده خدای متعانم اگر ما بخوایم با اعمال و رفتار خودمون در خونش بریم و حاجات لاینحل رو ازش درخواست کنیم معمولا به این که جواب نمیده فقط این هست که جواب نده. موانع رو باید برداشت. یکی از وسایل مهم رفع موانع در دعا عمل خوبه. اگر انسان اعمال داشته اعمال زشتی داشته، به عکسش زدشو زد، ضد در فارسی مستاقش همه باکتنه مثلا پادزهره اگر انسان پادزهره کارهای بد رو میخواد بزنه کار خوب میشه پادزهر این الحسنات یوزهب نس در قرآن داره وقتی کارهای خوب انجام میدید خدای متعال سیعات و بدیه ها رو میشوره میبره خود کار خوب ضد بد انسان انجام بده کار بدی رو دروغ می دفته. مثلا خدای نکرده دست لازی به مال مردم حیثیت مردم اماندداری نمی کرده و امثال اینجور بدی ها به عکسش عمل کنه این خودش میشه راه آشتی این خودش خود به خود موانی را از از بین می بره و داره که اگر کار نیکو انجام بدی کار بعد خود به خود از وین میره میگه توبه نکردیم یا نکن بدون توبه همین که زدش انجام بدی میشه پات زهر و اثر اون کار رو از وین میبره دروایت در داره که زیل همین های شریفه ظاهرا در تفسیر عیاشی هست داره که وقتی مؤمن به دنبال کار کار نیکو و درست رو زدش رو انجام میده تنها اون گناه شسته میشه اثری هم ازش باقی نگمونه گاهی آدم خون رو میشوره به ظاهر پاک میشه اما ترنگی ازش میمونه میگن توجه نکنین اون علامت نجسی نیست در روایت داره که اون ترنگی گناه هم نگمونه با زدش کار درست میشه این یکی از راه راه آشتی با خدا تا بتونیم اون دعاهای استرالیمون رو به اجابت پریسون یکی از راه دیگه توبه هست توبه نییته عملی نیست. همین که ندامت انسان پیدا میکنه حضرت فرمود خود ندامت و پشیمانی از گناه توبه است به دنبالش بخشش میاد توبه بخوام تعبیر درستی برش بیارم توبه از موضوعات دفعیه به محض اینکه انسان پشیمان میشه پذیرفته میشه به محض اینکه که استقبار میکنه پذیرفته میشه یقینا منتها در عمل و بیرون گاهی آدم تخلیب میکنه، تخلیب مجدد میکنه توبه خراب میشه چون عادت کرده، چون روالش بوده که آزاد باشه، هر کاری که دلش خواسته، هر کاری که دلش نخواسته نکرده، اون کاری که خواسته کرده لذاد نیت میکنه، پشیمانم هست. واقعا هم هست، میخواد که دیگه انجام نده، این میشه توبه اما در عمل مجدد تکرار میکنه اون توبه به هم میخوره. دستور راستی که مجدد پشیمانی خودتون رو اظهار کنه انقدر این کار باید انجام بشه تا اون نیت دفعی که اثر دفعی داره و به محض پشیمانی از گناه و به محض توبه کردن و طلب استقبار کردن پذیر میشه اون مندگار باشه به هم نخوره به همین راهتی یعنی از اون طرف هیچ مانه ای نیست همین که ما به دنبال گناهمون، اسیانمون، پشیمان میشیم تمام خدا پذیرفته این این روایت از امام صادق سلام علیه هست همین که مؤمن از گناه کبیرش حتی پشیمان میشه خدا می پذیرفته انقدر خدا کریمه دیگه با خودمونه که در عمل و بیرون آیا همسش کنیم این پشیمانی رو یا نوزو بالله از دست بدیم راه توسل به خدای متعال ندامت از گناه فقط اگر این ندامت پیدا بشه و توسل کنیم درخواست کنیم استرارمون رو اظهار کنیم و از او تمنا کنیم امید این که قبول بکنه بسیار زیاد است. انقدر این امید زیاده که حضرت میفرماید من شک ندارم در عبارت کوندن ها ها شک ندارم که قبول میشه عجیبه اونجا که مریضی های لاعلاج هست یک شبه میبینین همه مال انسان رو برداشتن بردن و از این جور مسائلی که و مصیبتهایی که دست آدم به جای بند نیست خدای متعال میفرماد به خودم مراجع کن معیوس نشون مؤمن اینجوریه راه توجه به خدا به این شکل این هستش که مصمم بشیم مسیر گناه رو مصمم بشیم مغتزیات و مقدمات گناه رو با دست خودمون پیش نگیریم راهشین نه اینکه گناه نکنیم مقدمه گناه رو پیش نگیریم خیلی مهمه خدایا ان به همه ما این توفیق رو عنایت کنه بتونیم یأس رو از خودمون دور کنیم امید رو جایگزین کنیم این امید رو خدای متعال نه اینکه درست میداره برمان لازم کرده واجب کرده که میگه اگر مایوس بشین حرامه یعنی امید لازم و واجبه اگر به خدا به این نه اعتقاد داشته باشیم که انشالله داریم خدا من استجابت میکنه مصیبتها رو مشکلات رو و اون رنگ روی زندگیمون سبقی الهی پیدا میکنه رنگ خدایی پیدا میکنه شرطش این هستش که مقدمه گناه رو خودمون نچینیم رو خدا درست میکنه خدا رو قسم میدیم به حق خودش همه انبیای گرامش ملایکهٔ مقربینش خاسته نبیی خاتم ایمه اطهار اون بزرگ بزرگوار به ما توفیق بده هرچه بیشتر با خدای متعال معنوس بشیم اونس پیدا کنیم و رفیق بشیم به برکت سلوات بر محمد و محمد oh.